اصر پلیس فکر میکنه من یادم فضولم فکر میکنن من اللافم خلوچه از نظر روانی ناپایدار اصلا نباید به داره پلیس میرفتم موقعیت خودم رو بدتر کردم و فکر نمیکنم کمکی به اسکات کرده باشم که خب دلیل رفتنم به اونجا در وهله اول همین بود اون به کمک من نیاز داره چون پلیس به شک داره که مباده بلای سر زنش آورده باشه و من میدونم که این حقیقت نداره چون من میشناسمش دیوونگی به نظر میاد ولی من این را قشنگ احساس میکنم من دیدم باش چجوری رفتار میکرد اسکات نمیتونه بهش آسیبی رسونده باشه باشه خیر خوب تنها دلیلم برای رفتن پیش پلیس اسکات نبود موضوع اون دروغی بود که گفتم و باید رفت و رو میکردم دروغ در مورد کارم توی هانتینگتون بیتلی سنم اون قدری بود که از رفتن به ایستگاه پلیس نترسم. چند بار نزی بود برگردم اما بالاخره رفتم. به گروهبانی که پشت میز بود گفتم میخوام با کاراگاپ بازرس گاسکیل صحبت کنم. اتاق انتظار به هم نشون داد که بیشتر از یه ساعت اونجا نشستم تا بالاخره یکی اومد سراغم. تا اون وقت مثل زنی که برای اعدام میبرنش مدام خیس عرق میشدم و میلرزیدم. من به اتاق دیگه راهنمایی راه نمای شدم، کوچکتر و خفه از اون یکی، بدون پنجره و هوا. بیشتر از ده دقیقه اونجا معتر شدم تا اینکه گسکیل و یه زن، اونم با لباس شخصی سر و کلشون پیدا شد. گسکیل معدبانه به من سلام کرد. به نظر نمیرسید از دیدن من تعجب کرده باشه. همراهشو به اسم گروه بانکاراگاه ریلی معرفی کرد. جوان از منه قد بلند لاغرندان مومشکی با صورت نسبتا تیز یه جورای موزی. لبخندم و بی جواب گذاشت. نشستی ما کسی چیزی نگفت فقط منتظرانه به همدیگه نگاه کردن. گفتم من اون مرد و یادم اومد. به شما گفتم یه مردی رو توی ایسکا دیدم میتونم توصیفش کنم. ریلی یه ذره عب بالا انداخت و سندلیش رو جا بجا کرد. قدش متوسط بود، هیکلش متوسط بود، ماش خرموز بود. من من روی پلا سکندری خوردم و اون بازومو گرفت. گسگل شد جلو. آرنجاشو گذاش روی میز و دستاشو جلوی دهنش به هم دیگه گره زد. اون یه پیرنه، فکر کنم یه پیرن آبی پوشیده بود. این حقیقت نداره. من مردی رو یادمه و قشنگ مطمئنم موهاش سرخ بود توی قطار دیدمش رو فکر میکنم به هم لبخند زد شدم م پوسخند فکر میکنم توی ویتنی پیاده شد و من فکر میکنم ممکنه با هم صحبت کرده باشه اصا شاید روی پلهها تلو تلو خوردم من از این موضوع یه خاطره دارم اما نمیتونم بگم این خاطره مربوط میشه به شنبه شب یا یه وقت دیگه خیلی وقتا سرخ خوردم روی خیلی از پلهها سرخ خوردم نمیدونم اون چی تنش بود. هیچ کدوم از دو تا معمول با قصه من تحت تأثیر قرار نگرفتن. ریلی تقریباً به شکلی غیر محسوس سر تکون داد. گسکیل دستاشو از همدیگه باز کرد و پرسید. خب. واقعاً شما اومدین اینجا تا اینو به من بگین خانم واتسون؟ خشمی توی صداش نبود. بنظر می‌رسید حتی داره تشویق می‌کنه. دلم میخواست ریلی از اتاق بره بیرون اینجوری میتونستم با گاسکی صحبت کنم حقیقت حقیقتو بهش بگم گفتم من مدتیه توی هانتینگتون ویکلی کار نمیکنم. تکیه داد به صندلیش و با علاقه بیشتری نگاه کرد او سه ماه قبل اونجا ترک کردم هم اتاقم در واقع سابخونه من هنوز اینو بهش نگفتم دارم دنبال کار میگردم. نمیخوام اینو بدونه چون ممکنه نگران اجاره خونه بشه یه مقدار پول دارم میتونم اجارم و پرداخت کنم اما به هر حال دیروز در مورد کارم بهتون دروغ گفتم به خاطرشم مذارت میخوام. ریلیخم شد جلو و لبخندی مصنوعی تحویلم داد. میدونم شما دیگه برای هانتینگتون ویتری کار نمی کنین. شما هیچ کار نمی کنین. درسته؟ بیکارین نه؟ من سرتگون دادم. خیلی خب بنابراین به جایی تعهد ندارین یا همچین چیزی؟ نه. و هم اتاقی شما متوجه نشده که شما سر کار نمیرین میرم یعنی منظورم اینه که من نمیرم دفتر اما میرم لندن تو همون ساعتهای کاری و مثل برنامه های قبل بنابراین اون خب نفهمیده دیگه ریلی به گسگیل نگاه کرد گسگیل خیره شد به من رو یه ذره اخم کرد گفتم عجیب به نظر میاد میدونم و بقیه رو ادامه ندادم چون فقط عجیب به نظر نمیاد وقتی آدم اینو به صدای بلند برای یکی میگه، احمقانه هم به نظر میاد ریلی really? ازم پرسید. که اینطور؟ پس شما هر روز میرین سر کار. با انگار که نگران من باشه عبروش و گره انداخته بود. اعتمانم فکر میکرد من از بیختیونم من حرفی نزدم یا سرتکون ندادم. هیچ کاری نکردم فقط سکوت کردم. میتونم ازتون بپرسم چرا شغلتونو رو ترک کردین خانم واتسون؟ چیزی برای دروغ گفتن وجود نداشت حتی اگه قبل از این گفتگو هم سوابقم و بررسی نکرده بودن الان دیگه روشن بود گفتم اخراج شدم ریلی با رضایتی در صداش گفت مرخصتون کردن سال بعدی به وضوح قابل پیشبینی بود چرا اخراج شدید آهی کشیدم و ملتمسانه به گسکیل نگاه کردم واقعا مهمه موضوع اینه که چرا من شغل ما از دست دادم گسگیل چیزی نگفت مشغول یادداشتهایی بود که ریلی جلوش گذاشته بود اما یک کچولو سرتکون داد ریلی روشش رو عوض کرد میخوام از شما راجب شنبه شب بپرسم خانم وادسون من به گسگیل نگاه کردم ما قبلا در این باره حرف زده بودیم اما اون بهم به نگاه نمیکرد گفتم البته البته دستم بی اراده رفت روی سرم و جای زخم و لمس کرد. دست خودم نبود. به من بگین چرا شنبه شب رفتین بل نیم؟ چرا میخواستین با شوهر سابقتون صحبت کنین؟ گفتم. م... واقعا فکر نمی کنم این موضوع به کار شما ارتباطی داشته باشه. و بعد به سرعت قبل از اینکه اون زمانی داشته باشه تا چیز دیگه بگه گفتم. ممکنه یه لیوان آب به من بدین؟ گسگیل بلند شد از اتاق بیرون رفت امیدوار بودم اون از اتاق بیرون نره ریلی یک کلمه حرف نزد فقط با اثر لبخندی که هنوز روی لباش باقی مونده بود بهم هم نگاه میکرد نتونستم نگاهمو همو بدوزم به میز نگاه کردم گذاشتم چشمام دور اتاق بچرخه میدونستم این یه تاکتیکه اون سکوت کرده بود و با این کار منو توی موقعیت بدی قرار داد تا چیزی بگم حتی اگه واقعا خواستم بگم گفتم چیزایی هست که باید در موردش حرف می زدیم. مسایل خصوصی. من مسخره و از خود راضی به نظر می ریلی آه really, oh, کشید. من لبم و گاز گرفتم. تصمیم گرفتم تا وقتی گسگیل به اتاق برنگشته حرف نزنم. لحظه بعد برگشت. یه لیوان آب خونک گذاشت جلو. ریلی really, بیدرنگ گفت. مسائل خصوصی؟ درسته. گسگیل و ریلی really, نگاهی با هم رد و بدل کردن. مطمئن نبودم از روی خشم بود یا گیجی عرق بالای لبم و زبون زدم یه جرعه آب خوردم تم موندگی میداد. گسگل می‌داد گاسکیل روش این روش بر کرد و بعد هلشون داد یه کناری انگار که کارش با اون تموم شده بود یا و... یا اینکه چیز به درد نخوری اون تو نبود نگاهش از روی اون کاغذ برداشت خانم واتسون شوهر همسر فعلی شوهر سابق شما خانم آنا واتسون به خاطر شما احساس نگرانی میکرده اون به ما گفته که شما براش مزاحمت ایجاد میکنین برای شوهرش گفته که شما یه بار توی فرصتی سرزده رفتین خونه شون. اما ریلی حرفش رو قد کرد توی فرصت مناسب شما رفتین در خونه خارم آقای واتسون و شکستین و بچه رو برداشتین بچه نوزادشون رو سیاه گودالی وسط اتاق دهن باز کرد و منو رو گفتم این حقیقت نداره من من این کارو نکردم من همچین کاری نکردم من این دروغه نه نه من اونو عذیت نکردم بعد خیلی ناراحت شدم شروع کردم لرزیدن و گریه گفتم میخوام برم ریلی سندلیش رو عقب کشید و بلند شد گسکش شونه بالا انداخت از اتاق رفت بیرون یه دست ملک و آورد داد دستم بهم لبخند زد یه جور لبخند عذرخواهی شما میتونین هر وقت خواستین برین خانمه واتسون شما اومدین اینجا تا با ما حرف بزنین توی اون لحظه دوست داشتم میخواستم دستشو بگیرم و فشار بدم اما این کارو نکردم چون غیرعادی بود گفت فکر می کنم شما چیزایی برای گفتن به ما دارین آه. بیشتر دوست داشتم که بگه به من نه اینکه بگه به ما بلند شد و راهنماییم کرد سمت در شاید بخاین الان استراحت کنین دراز بکشین یا چیزی بخورین وقتی کردین آماده این برگردین اون وقت میتونین هر چیزی که میخواین به من بگین تصمیم گرفتم که کلا همه چی رو فراموش کنم و برم خونه داشتم برمیگشتم سمت ایستگاه قطار آماده بودم همه چی رو پشت سر بذارم بعد به سفر با قطار فکر کردم به عقب و جلو شدن روی خط و رد شدن هر روز از جلوی اون خونه خونه مگان و اسکات اگر اصلا پیداش نکنن چی اون وقت من تا عبد تیرون میموندم، نه، این فکر زیاد واقعی نیست، اما حتی اگه اینطور باشه، مگه چیزایی که من میگم کمکی به پیدا شدنش میکنه، اگه اسکات متهم باشه که بلایی سرش آورده فقط به این دلیل که اونو اصلا از وجود بی خبر ندارن چی؟ اگه مگان، درست همین حالا توی خونه بی باشه چی؟ توی زیر زمین بسته شده باشه، زخمی و در حال خونریزی یا توی باغ دفن شده باشه چی؟ همون کاری رو کردم که گسکیل گفت. یه ساندویج ژامبون و پنیر با یه بطری آب از فروشگاه خریدم و رفتم به تنها پارک ویتنیک بدبختانی یه تیکه زمین تو محاصره خونه های دهی سی و زمین بازی یک سر آسفالت. نشستم روی نیمکت، به مادرها و پرستارهای بچه ها که مشغول سرزنش کردن بچه ها بودن که باید قضاشون رو بخورن و از توی چاله چولوهای پرشن و ماست بیرون نگاه کردم. با دیدن این چیزا رفتم توی رویا به چند سال قبل؟ تو رویا اومدم اینجا. نه برای خوردن ساندویژ جانبان و پنیر تو فاصله دو ملاقات با پلیس. من توی رویا به وضوح خودم رو دیدم که با بچم اومدم اینجا. به کالسکهی که باید بخرم فکر کردم به اینکه تمام وقت باید توی مرکز آموزش ابتدایی دنبال جور کردن لباس مناسب و اسباب بازی آموزشی بدو بدو کنم به این فکر کردم که چقدر میتونم سرزنده اینجا بشینم در حالی که کیفم رو دامنمه این اتفاق نیفتاد هیچ دکتری نتونست توضیح بده که چرا من نمیتونم حامله بشم من به اندازه کافی جوونم به اندازه کافی سالمم. اگه تلاش میکردم میتونستم این جور ناشیانه ننوشم اسفرماایی شوهرم فعال بودن و فراوون فقط حاملم نکردن نه اینکه بچم با درد سخت بشه من اصلا حامله نشدم ما یه بار باروری داخل لوله آزمایش رو انجام دادیم این تنها کاری بود که میتونستیم انجام بدیم مثل این بود که یکی بهمون تذکر بده که این روش ناخوشایند و ناموفقه. هیچکس به من تذکر نداد که این کار میتونه بین ما رو خراب کنه. اما اینطور شد. بهتر از اون این کار منو در هم شکست و بعدش من زندگی رو به کام هر دو تامون ترخ کردم. چیزی در نازایی هست که تو رو وادار میکنه ازش دوری کنی. به خصوص وقتی که توی سیسالگی سالگی هستی. دوستات بچه دار شدن، دوستای دوستات بچه دارن. همه خبر از بارداری و تولده و همه اولین جشن تولد بچه برگزار میشه. به خاطر این همیشه بازخواست میشدم. مادرم، دوستام، همکارام سر کار. تو کی میخوای بچه داشتی؟ بعضی وقتا بچه داری تبدیل میشد به موضوع مکالمه نهارای یک شنبه. نه فقط بین من و تو هم کلن. چیزی که ما برش تلاش میکردیم. چیزی که ما باید انجام میدادیم. واقعا فکر میکنی باید لیوان دوم شرابم بخوری؟ من هنوز جوان بودم هنوز وقت زیادی داشتم اما عدم موفقیتم منو مثل یه ردا توی خودش پنهان میکرد منو قرق خودش میکرد منو زیر خودش میکشید و من امیدوار میشدم با همچین وضعیتی دلم از این شکسته که این موضوع همیشه به عنوان نقص در من دیده میشه و انگار من کسی هستم که گذاشتم اینجوری بشه اما اون با سرعتی که تو حامل کردن آنا داشت ثابت کرد که مردونگیشی هیچ مشکلی نداره. من اشتباه میکردم که فکر میکردم ای بس هر دو تا تامونه. این موضوع فقط مربوط به من بود. لارا بهترین دوستم از زمان دانشگاه در عرض دو سال دو تا بچه به دنیا آورد. اولی پسر دومی دختر. من مثل اونا نیستم. نمیخوام هیچی راجع بهشون بشنوم نمیخوام نزدیک اونا برم. لارا بعد از مدتی دیگه با هم حرف نزد یه دختری توی محیط کار بود که به من گفت انگار داشت راجع کشیدن دندون عقل یا در آوردن صحبت میکرد گفت که اخیرا یه سخت چنین داشته از نوع درمانی و نسبت به جراحی های دانشگاه خون ریزی خیلی کمتری داشته بعد از این من نتونستم بایش صحبت کنم به سختی میتونستم بهش نگاه کنم خیلی زایی بود بقیه متوجه شدن تام احساس منو نداشت این به اون نبود به هر حال و به هر دلیلی اونقدر که من به بچه نیاز داشتم اون نداشت اون میخواست بابا باشه واقعا میخواست من مطمئنم که اون روزا توی رویاش میدید که داره با پسرش توی باغ به یه توپ لگت میزنه یا دخترش رو توی پارک گول کرده اما فکر میکرد زندگی ما بدون بچه هم میتونه خوب باشه ما خوشبختیم اون همیشه این جمله رو به من میگفت. چرا ما فقط نمیتونیم خوشحال باشیم؟ اون با هم به هم زد. هیچ وقت نفهمید چراید آدمی وجود داشته باشه که برای چیزی که نداره و هرگزم نخواهد داشت ماتن بگیره. کم کم احساس میکردم تو این بدبختی تنها هم. من تنها شدم و بنابراین شروع کردم به نوشیدن. اول یه ذره، بعد یه ذره بیشتر. و بعد بازم تنها تر شدم چون هیچکس کس دوست نداشت دور برای مست باشه من شکست خوردم و نوشیدم و نوشیدم و نوشیدم و شکست خوردم با اینکه شغلم فوق العاده نبود اما دوستش داشتم و حتی اگه شغل فوق العاده ای هم داشتم بی‌صادق باشم زن هنوز که هنوزه واقعا برای دو تا چیز ارزش قائلن اینکه مادر بشن و مادری کنن من؟ خوشگل نیستم و نمیتونم بچه دار بشم. خب باید چیکار کنم؟ ارزشی ندارم پس. نمیتونم همه این چیزها رو بندازم گردن مشروب. نمیتونم والدینم یا بچه‌م رو سرزنش کنم یا مثلا یه دایی یا عموی پیدا کنم که ازم سو استفاده کرده یا از این تراژدیی وحشتناک. این تقصیر منه. به هر حال من یه عرق خورم. اما غمگین تر شدم و غمگین بودن بعد از مدتی خسته کننده میشه هم برای خود کسی که غمگینه هم برای کسایی که دور و بعدش از یه مصرف کننده تبدیل شدم به یه متاد هیچی خسته کننده تر از این نیست حالا بهترم در مورد موضوعی به اسم بچه از زمانی که خودم رو ول کرده بودم بهترم باید بهتر بشم کتاب و مقاله های خوندم و فهمیدم که باید یه دوره های رو بگذرونم برنامه های وجود داره میش امیدوار بود اگه من خودم رو جمع جور کنم و ممس نکنم امکانی برام هست هنوز سی و چهار سالم تموم نشده. بهتر از چند سال قبلمم. نه مثل وقتی که توی مغازه چرخ دستی خرید و ول کردم تا از مغازه که پر مادر و بچه بود بزنم بیرون اون وقت حتی نمیتونستم بیام به پارک مثل اینجا بشینم نزدیک زمین بازی بچه ها و به بچه های که تازه افتادن و ریسورس را بالا پایین نگاه کنم. وقتایی بود که در نهایت سقوط بودم. وقتایی که بد جوری آتش الکل داشتم. وقتایی که به نظر می رسید عقلم از دست دادم. شاید یه مدتی از دست داده بودم. مثل قضیه اون روزی که توی ایستگاه پلیس ازم پرسیدن. احتمالاً اون موقع دیوونه شده بودم یا به خاطر اون حرف ناگهانی تام بود که منو پا کرد، انگار با سر خوردم زمین. در واقع یه جورایی به خاطر اون نوشته بود، نوشته ای که صبح همون روز تو فیسبوکش دیده بودم. حرف تکون دهنده ای نبود میدونستم بچه داره اون به هم گفته بود و من دیده بودمش من اون کچولی چشم بسته رو از پشت پنجره اتاق اطفال دیده بودم برای همین ماجره بچه بچهرو میدونستم اما فکر میکردم منظورش از بچه بچه زنشه تا روزی که اون عکس رو دیدم عکسی که دختر نوزادشو بغل کرده بود بهش نگاه میکرد و لبخند میزد زیرش نوشته بود خب تمام حیاهو سر این بود هرگز نمیدونستم آشق چیزی مثل این میشم این بهترین روز زندگیمه من به خودش و این نوشتهش فکر میکردم به اینکه باید اینو میفهمیدم که باید این کلمات رو میخوندم کلماتی که منو تا سرحد مرگ میبردن اون مرائات نمیکنه پدر و مادر و مراعاته هیچی رو نمی جز بچه هاشون. انگار اونا توی مرکز جهان وایسادن و تمام واقعیتی هستن که به حساب میاد. هیچ کس دیگه یه همیت نداره. درد و رنج یا شادی، هیچی، هیچ کدوم اینا انگار واقعی نیستن. اون روز عصبانی بودم و هم ریخته بودم. شاید حتی حس انتقام جویی داشتم. شاید فکر کرده بودم که باید بهشون نشون بدم چقدر بدبختیم واقعیه، نمیدونم من یه کار احمقانه کردم بعد دو ساعت برگشتم ایسکای پلیس خواستم با گسکیل تنهایی صحبت کنم اما گفتش که میخواد ریلی هم باشه یکم بعدش داشت ازش خوشم میومد. گفتم من در خونشون نشک من اونجا رفتم تا با تام صحبت کنم وقتی در زدم هیچ کس جواب نداد ریلی پرسید پس چطوری رفتین داخل؟ در باز بود. در جلو باز بود. آه کشیدم. نه البته نه، که نه. در کشوی ورودی اونی که به باغ باز میشه. و چطوری وارد باغ شدین؟ از رو نرده ها رفتم. من, من اونجا رو بردم و... بنابراین از نرده بالا رفتین تا برین خونه شوهر سابقتون؟ بله. ما همیشه یه دونه کلید زاپاس په در میذاشتیم یه جایی داشتیم که اونو قایم میکردیم تا اگه یکیمون کلیداش رو گم کرد یا جاشون گذاشت باشه در نمونه اما درو در نشکستم نه من فقط میخوااستم با ت هم حرف بزنم فکر کردم شاید زنگ کار نمیکنه یا یه همچین چیزی ریلی really? پرسید وسط روز و وسط هفته بود نه؟ چرا فکر کردین که شوهر سابقتون باید همچین وقتی خونه باشه زنگ از ببینین ببینیم کجاست؟ فریاد زدم خدای تو میذاری من حرف بزنم؟ و اون سرش سرشو تکون داد و دوباره لبخند تحبیلم داد. انگار منو میشناخت، انگار ذهنمو میخوند. سعی کردم بلندی صدامو کنترل کنم، گفتم از نرده بالا رفتم. زدم به درای شیشه ای کشویی که یک هم باز بود. جوابی نایمد. سرمو بردم تو و تامو صدا کردم. باز جوابی نایمد. اما تونستم صدای گریه بچه‌رو بشنوم. رفتم تو و دیدم که آنا اونجاست. خانم واتسون؟ بله خانم واتسون نشسته روی مب خوابش برده بچه توی گهواره بودش گریه هم جیغ میزد در واقع صورتش قرمز شده بود معلوم بود که مدتی داره گریه میکنه. وسط گفتن این حرف رو ذهنم رسید باید میگفتم صدای گریه بچه رو از بیرون شنیدم از پشت نرها برای رفتم تو این حرف کمتر منو دیوونه نشون میداد. ریلی ازم پرسید: پس بچه داش جیغ میکشید و مادرش درست اونجا خوابیده بود ها. آرنجشو گذاش روی میز و دستاشو گرفت روی دهنش برای همین من نتونستم کامل چهرش رو بخونم. اما اینو فهمیدم که فکر میکنه من دارم دروغ میگم. بچه رو بلند کردم تا راحت باشه همش همین بود اونو برداشتم تا ساکتش کنم. این همش نیست، هرچند تا حدودی همین جوره. چون وقتی آنا بیدار شد شما اونجا نبودین بودین؟ شما رفتین سمت نرده ها. از روش پریدین و رفتین سمت خط آهن. گفتم. به هر حال بچه همین جوری گریه میکرد من تکونش دادم و باز ونگ ونگ میکرد برای همین آوردمش بیرون بیرون تا خطاهن؟ توی باغ یعنی شما میخواستین به بچه واتسونا آسیبی بزنین؟ از جد در رفتم چقدر ملودراماتیک میدونستم اما میخواستم اونارو رو وادار کنم منو ببینن وادار کنم که گسکیل منو ببینه چه اشاره زالمانه ای بود من نباید به این حرفا گوش بدم، من اومدم اینجا تا به شما به یه مرد بگم، اومدم اینجا تا به شما کمک کنم و حالا دقیقا داریم من رو به چی متهم میکنین، چه تاهمی داریم به من میچسبونین گسل خون سرد باقیمون، غیر قابل تأثیر دوباره بهم یادآوری یاد وریکت بشینم خانم واتسون، اون یکی خانم، خانم واتسون، آن نه. وقتی در باری مگان هیفر پست جور می کردیم، این حرف رو در مورد شما به ما گفت اون گفت که شما رفتار آشفته ای داشتین یه جور رفتاری که قبلنم شاهدش بوده. اون قضیه بچه رو گفت گفت که شما اونو شوهرش رو به ستوو آوردین و مرتب به خونشون زنگ زننی برای لحظه به به یادداشتش نگاه کرد در واقع شبا و اینکه شما قبول نمیکنین ازدواجتون به پایان رسیده رک و پوستگنده بهتون بگم این حرف حقیقت نداره. درسته. من اصرار میکردم و مله. دم به دقیقه به تام زنگ میزدم. اما نه هر شب این دیگه خیلی اقراق بود. به حال گسگیر با این حرفی که زد شد احساس کنم طرف من نیست. و دوباره نزدیک بود گریم بگیره. ریلی ازم پرسید چرا فامیلیتون رو عوض نکردین؟ ببخشید؟ شما هنوز از فامیلی شوهر سابقتون استفاده میکنین چرا؟ اگه یه مردی منو رو بخاطر زن دیگهای ترک کنه به نظرم بخوام از شر اسمش خلاص شم یقینا دوست ندارم اسمم با کسی که جایگزینم شده یکی باشه خب شاید من اینقدرم تنگ نظر نیستم من تنگ نظرم من متنفرم که اسم آن نام واتسونه درسته و این حلقه اون زنجیری که تو زنجیر دور گردنتونه اینا یادگاری عروسیتونه؟ نه؟ دروغ گفتم. این یه چیز مال مادر بازرگ بوده. جدا؟ خیلی خوب. باید بگم که به نظر من رفتار شما همونطور که خانم واتسون به طور اشاره کرد، نشون میده که شما نمیخوایم کنار بکشین یا قبول کنین که شوهر سابقتون خانواده جدیدی داره. نمیدونم. ریلی really, جمله و اینجور تموم کرد با مگان هیپفل چیکار کردین خب مگان اون شب گم شده ما گزارش‌هایی داریم که شما یه زن غیر متعادل که حسابی مصبود توی خیابانی که اون زندگی میکرده دیده شده به نظر میاد که یه سری های فیزیکی بین مگان و خانم واتسون وجود داره از این حرف عصبانی شدم جس اصلا شبیه آنا نیست مگان اصلا شبیه آنا نیست به نظر نمیرسه که اونا رو با هم دیگه داشته باشن. موهای هر دو بلونده، لاغر اندامن، ریزه میزه، پوستشون هم روشنه. گفتم. بنابراین من به مگانی فل حمله کردم با این فکر که اون آن هان. این احمقانه ترین چیزیه که تا حالا شنیدم. اما این برجستگی زخم توی سرم دوباره تپش پیدا کرد. چیزی از شنبه شب هنوز توی تاریخ ترین بود. شما می که آنها واتسون مگان هیپ می شناسه؟ پرسیدش رو من احساس کردم. صورتم دراز شد. من ج... نه. نه نه اونو هم دیگر رو نمی شناسن. ریلی لبخندی زد و بعد صورتش رو جمع و جور کرد. بله هم دیگر رو می شناسن. مگان پرستار بچه بوده. به نگاه کرد آگست و سپتامبر گذشته چیزی رو که میگفت نمیدونستم نمیدونستم تشعصمش کنم مگان تو خونه من با اون با بچه اون زن از لزن پرسید اون بریدگی روی لبتون ماله کوبیدگی روز تصادفه؟ بله فکر میکنم ماله وقتیه که خوردم زمین کجا بود این, این تصادف؟ توی لندن، توی خیابون تاوبالت، نزدیک هولبرن، و شما اونجا چی کار میکردین؟ ببخشید، چرا رفته بودین مرکز لندن؟ من شونه بالا انداختم، به سردی گفتم، بهتون که گفتم، هم اتاقی من نمیدونه شغلم از دست دادم، بنابراین معمولا میرم لندن رو به کتابونها سر میزنم، دنبال کار میکردم یا برای کار رزومه پر میکنم ریلی ساجوتو کوندا چت از روی ناباوریا ترجب چطور هیچ این موضوع رو نمیگیره صندلیمو کشیدم عقب آماده شدم که برم به اندازه کافی صحبت کرده بودم اونقدر که احمق به نظر بیام یه زنی دیونه وقت بازی با برگ برنده بود گفتم من واقعا نمیدونم چرا ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم من فکر میکنم که شما کاره بهتری برای انجام دادن دارین مثل تحقیق در مورد ناپدید شدن میگان من برای این اومدم اینجا تا با شما در مورد کسی که اون عاشقش بود صحبت کنم هیچ کدومشون چیزی نگفتن فقط به زل زدن انتظار شنیدن همچین چیزی را رو نداشتن روحشون هم از همچین کسی خبر نداشت گفتم شاید, شاید شما نمیدونین مگان هیپ یه رابطه آشقانه داشت و رفتم سمت در گسگیل من رو نگه داشت اون به شکل شگفت‌آور پرید سمت در و دستشو گذاشت رو دستیره و جلوم وای من از ازم پرسید: "من فکر کردم که شما مگان هیپ‌فلر نمی‌شناسین." گفتم: نمیشناسم سعی کردم از کنارش رد بشم. راهمو سد کرده بود گفت: "بشین." چیزی رو که توی قطار دیده بودم بهشون گفتم. گفتم که اغلب مگان رو که بیرون روی تراس نشسته بود میبینم. میبینم که عصر را آفتاب میگیره یا صبح مشغول قهوه خوردنه. بهشون گفتم هفته پیش اونو با یکی دیدم که مطمئنا شوهرش نبود و دیدم که روی چمن همدیگر رو بوسیدن گاسکل با عجله گفت کی بود به نظر میرسید ازم دلخوره شاید چون فکر میکرد بهتر بود جای اینکه تمام روز سر و حرف زدن درباره خودم بکنم باید زودتر اینو میگفتم جمعه جمعه صبح بود ریلی خشمگین آه کشید و پرسید آه، بنابراین روز قبل از اینکه گم بشه شما اونو با مرد دیگه ای دیدین ها و پرونده ای که جلوش باز بود و بست. گسگیل به صندلیش تکیه داد و زور زد به صورتم. واضح بود که ریلی فکر میکنه این داستانو از خودم ساختم. اون یکی خیلی مطمئن نبود. گسگیل پرسید: میتونی توصیفش کنی؟ قد بلند، تیره. ریلی حرفم رو قطع کرد. خوشقیافه؟ رو هم فوت کردم. گفتم: بلندتر از اسکاتیفل. من میدونم چون اونارو با هم دیگه دیده بودم. و ببخشید. مگانو و اسکاتیب یکی شبیه اون نبود فرق داشت لاغر تر باریک تر هم تیره تر بود احتمالا آسیاییه ریلی گفت از توی قطار تونستی تعین کنی از کدوم نژاده؟ جالبه جس کیه حالا؟ ببخشید تو قبلش گفتی جس احساس کردم صورتم دوباره گرگرف سرمو تکون دادم و گفتم نه نگفتم گسگیل بلند شد و دستش رو پیش آورد تا با هم دست بده. فکر می کنم همین کافیه باهاش دست دادم به ریلی حل نذاشتم برگشتم که برم گسگیل گفت: خانم واتسون هیچ جور نزدیک خیابون بل نیم نرین. با شوهر سابقهتونم تماس نگیرین مگه اینکه مهم باشه. هیچ جا نزدیک آن رو واتسون و بچش نباشین. تورا خونه توی قطار همینطور که داشتم بررسی میکردم. امروز کجاها اشتباه کردم؟ از این تعججب کردم که اون قدرام از کاری که انجام دادم نمیترسیدم دربارهش فکر کردم میدونستم چرا اینجوره من شب گذشته ننوشیده بودم و الانم میل نداشتم برای اولین بار بعد از سالها چیز ای بیشتر از بدبختی خودم برام جالب شده بود من هدف دارم یا حداقل یه سرگرمی